هیچه یه دنیا که کس شعری نشیدی تا حالا برای بچه پاستاریزه بولمو بیارم پایین تخز کپک و را کلاش یک کلاش دو کلاش سه زدیم تو خیابون بخداف مدرسه بردیم تو مکان در رو بردیم البسه ما چا گرفتیم اون اول البته زدیم توش شدیم رفقا زدن توش خانیاک هنسی رو ریختن روش دوش گرفتیم زدیم دیگو جاده بالا سمت میگو بپیقه ما بداشت ما بچه شمرو درو بچه شر ترون بیا حالا بیا با ما زده بلا حالا دیگه حال نمیدن چا قالا تو خیابون رفق ببین بگو ماش دوست و فر گدا دری بوده ورسش سرختر روه این خامونه کل چه کلاش تو کله زلی تو خییا بود مخداف مدرسه کل ش کلاش دو کلشه خااری وس پایدی ما روقبه کلشه کلاش دو کلشه زلی تو خییا بود مخداف مدرسه کل چه کلاش تو کله خااری وس پاییی ما کلایش کلاش کلایش دو کلایش سه گست خار دافی که پایه یه جز کلاسه بگم برد نکنشه چون که دافت راه خود از اون دنه من کلش توی به بده چار حالا نصف شد بطره اول این شب بازم میگم من از بطره گردن دو کمل کت زردن فقط خواهی کردن دستت تو حس میکنم تو دست کردم نکو کست نکو چست ندفشت به من میخونم واسه همه اونایی که خوش دلم یه بچه خوش گلم یه که بز دلم ته خدا بهرام جمال و شرق میگیریم می این پارتی پر برزرق و برق از شرق و غرق و از درد و شرق کلاشه کلاش كراج دو کلاش سه زنیف دو خیامون با خدافه مدرزه کلاشه کلاش كراج دو کلاش سه خارگیر و سقایی دیمان اغلبه کلاش یک کلاش دو کلاش سه زنیم توی خیامون مخداخه من رسه کلاش یک کلاش دو کلاش سه خارگیر مستقا اینی مال هم خرابه کلاش یک کلاش, کلاش سه بریز بالا میخوام بزنم این بیگو سه میخوانیم با بچ پت کجاستی کلپون سیدی خام توی چنجر ماشینم سرسنج از صدا چلا چاره بزن توش بریز رفتم من از نوش کپک رسیم به قضیه آز همین هم اسمم نیستوش حالا سعد برو جاست میخوام بزنم توش بگازم لایی بازی با پولیسای توش من اوندن این دافیا کارمه گیر بکش رو نگاهیم مال اقابه کوچین جاست میخوام زعیم بزنم به دافم ای خدا مزم. بازه چی جا رو شده راه هم با هم بریزیم خالج از شهر با بچ احوظ داریم این را و چش. کلاش رو کله زعید تو خاب بود مدرسه کلشه کلاش رو کلشه خارگی بایلی ماه کلشه کلاس رو کلسه زعنی تو خاب بود مدرسه کلشه کل رو کلشه خاارگی با رایلی ما ن چهخر کلاس دو Bahro! Ja, Shahshadiya. Kapan? Yes, so the positional PRIVATEاب <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <_NOUNCER> <laughs>